جماعت خواب اجتماع خواب زده جامعه چورتی <تصفيق> فرق میام قاتل و شاهد این است که قاتل شاهد جنایت هم هست اما شاهد قاتل نیست البته خاجه شیراز میگه شاهد که کمر به قتل آدمی بسته این قول حافظ ماست البته اورافای شما تعبیر دیگری از شاهدی دیگر دارند، پس فرق بسیار میان شاهد و شاهد. سلام، شما قسمت نهم پادکست تعلیف رو میشنوید هر قسمت از پادکست تعلیف خلاصه یک نمایشنامه است و این پادکست روز اول هر ماه میلادی منتشر میشه تو این قسمت از پادکست تعلیف سراغ نمایشنامه آیه با کلاه، آیه بی کلاه از قلام حسین سایدی رفتیم قلام حسین سایدی 24 دیماه 1314 در تبریز و در خانواده کارمند و اندکی بتحال به دنیا اومد سایدی دوران ابتداییش رو که تموم کرد وقتی وارد دبیرستان شد نوشتن رو شروع کرد و نوشتهاش رو در مجله داستان چاپ می کرد. در همون سالهای نوجوانی به فرقه دموکرات آزربایی پیوست. پیبست که از خواسته این حزب تدریس زبان ترکی در مدارس در کنار زبان فارسی البته و اصلاحات عرضی و اقتصادی بود. به هر شکل در 18 سالگی سایدی رو به خاطر همکاری با این فرقه حبس کردند و به خاطر همین سایدی مجبور شد یک سال بعد دیپلم خودش رو بگیره و در دانشگاه تبریز پزشکی بخونه. دوران دانشجویی سایدی هم همراه با فعالیت‌های سیاسی بود و همون موقع بود که با سمد بهرنگی آشنا شد. چون سایدی فعالیت سیاسی می‌کرد، به عنوان سرباز صفر در پادگان سلطنت آباد تهران خدمت کرد و البته این تهران آمدن باعث شد با محافل ادبی تهران آشنا بشه و بعد که تحصیلات خودش رو با مدرک دکترای تخصصی روانپزشکی به پایان رسون توی بیمارستان مشغول به کار شد و متبش توی خیابون دلگوشا هم تبدیل شده بود به پاتوق روشنفکران زمان مثل احمد شاملو، آل احمد و دیگران سایدی خودش توی این متب زندگی هم می کرد یعنی همونجا می خوابید و همه جور درد و مرزی رو هم درمون می کرد تا اینکه در سال 1332 بالاخره اولین نوشته هاش منتشر شد سایدی با چندین نمایشنامه وارد دنیای تئاتر ایران شد که یکیش همین آیه با کلاه، آیه بی کلاهه و من خیلی خلاصه گفتم زندگیش رو تا اینجا اگر علاقه من شدید به سایدی برید زندگیش رو خیلی مفصل بخونید. آدم جالبی بوده و همین بس که محمود دولت آبادی اسم اون رو در کنار رادی و بیزایی آورده و گفته ما به طور رسمی همین سه تاعتر نویس رو در ایران داریم. درباره خود نمایشنامه هم باید بگم که یک نمایشنامه خیلی نمادینه. و در دو پرده روایت میشه پرده اول آی با کلاه و پرده دوم آی بی کلا. سایدی توی این نمایشنامه سعی کرده به اقشار و طبقات مختلف جامعه بپردازه و به خاطر همین نمایشنامه تاریخ مصرف نداره به نظرم و انگار مثل خیلی از آثار شاخص جهان هر زمانی و در هر مکانی خونده بشه یا اجرا بشه به مخاطبش برداشت به روز و جدیدی میده. در انتهای این پادکست درباره سایدی و این نمایشنامه بیشتر حرف خواهم زد. نمایشنامه رو نشر نیل برای اولین بار در فروردین سال 1351 چاپ کرده اما ما از نسخه منتشر شده در انتشارات نگاه استفاده کردیم و سعیده جهان دیده زحمت خلاصه کردن این قسمت رو برای پادکست کشیده. به نظرم کار سختی بوده خلاصه کردن این قسمت چون نمایشنامه کاملا دیالوگ مهوره و خلاصه کردن این سبک نمایشنامه ها کار سختیه. امیدوارم دوست داشته باشید شما هم این رو و الف رو به دوستان خودتون هم معرفی کنید. بریم سراغ آیه با کلاه آیه بی کلا. صحنه نمایش یک محله نوساز در حاشیه شهر که از طلاقی چندتا تا کوچه به وجود اومده. طرف راست صحنه، خونه‌ای متروک و قدیمی با درو پیکر زمخت و های خشتی قرار داره. بیشتر پنجره‌های این خونه تخت کوب شدن. در نَبش این خونه پنجره بلندی قرار داره که راه خونه رو روشن می‌کنه. روبروی این خونه هم دو تا خونه هست که درهاشون کنار همه و چندتا پنجره دارن. خونه جلویی که تنها خونه که چراغش روشنه، بالکونی داره که دقیقا روبروش راه پلهی خونه متروک قرار داره. نیمه های شب در خونه روبرویی باز میشه، اول سر یه پیرمرد و بعد هم سر یه دختر از لای در دیده میشه. هر دو وحشت زدن و معلوم از خواب پریدن. پیرمرد و شامر به تن داره و وحشت زده به خونه متروک نگاه میکنه. دختر که ترسیده میگه ولکم بابا بیا بریم تو درم ببندیم نباید بریم بیرون پیرمرد میگه مگه میشه دختر میگه توی خونه ای ما که نیومده اصلا به ما چه پیرمرد میگه اگه بیا چی هرجور شده باید مردم رو خبر کنیم اما دختر همچنان سعی میکنه پیرمرد رو منصرف کنه پیرمرد همینطور که گفتیم به شدت ترسیده اما همچنان مصممه که همسایه ها رو خبر کنه پدر بعد از یک بحث کوتاه راجع موندن و برگشتن به خونه دخترش رو اینجوری راضی میکنه که ببین جونم آروم و بی سر و صدا از بغل دیوار میری سمت اون خونه که پنجرش روشنه همچین که رسیدی به در خونه شروع کن به زنگ زدن چند تا مشت محکم هم به در بکوب فهمیدی دختر همچنان سعی در منصرف کردن پدرش داره. پیرمرد به دختر میگه یکم دل و جرعت داشته باش اینکه ترس نداره. من هم سن و سال تو که بودم از شیر نرم نمی ترسیدم. این دو قدم را که چیزی نیست. دخترش در نهایت با استیصال و از سر اجبار به سمت یکی از خونه ها میره. اما به جای زدن در خونهی که چراغش روشنه در خونه دیگری رو میزنه. مرد خابالودی چند بار میپرسه که کیه و از پنجره به بیرون خم میشه. پیر مرد با دست مرد رو به پایین دعوت میکنه و به خونهی اشاره میکنه مرد که عصبانی شده میپرسه این وقت شب بازیتون گرفته این اداها چیه چه مرگتونه شما حرف بزنین خب پیرمرد آروم میگه دوست دوست به خونه مطروک اشاره میکنه و میگه اونجا مخفی شده مرد پنجره رو میبنده و هراسون وارد صحنه میشه حالا هر سه یعنی پیرمرد دختر و مرد فریاد میزنن دوست دوست یکی یکی چراغ خونه ها روشن میشه دکتر و مکانیک و البته بابای مدرسه و مادر همو مکانیکه وارد صحنه میشن. همه لباس خواب پوشیدن و آشفته‌حالن. چند لحظه بعد پنجره خونه بالکن دار باز میشه و یه مرد از داخل خونه روی بالکن میاد. دکتر میگه چی شده حضرت آقا؟ پیرمرد جواب میده که دز اومده. دکتر میگه خب کجا رو زده؟ پیرمرد خونه مطروک رو نشون میده و میگه رفته توی اون خونه. مردم دوباره فریاد میزنن که آی دوست، آی دزد. دکتر از اهالی میخواد که سر و صدا نکنن. و از مردی که بعد از دختر و پیرمرد وارد صحنه شده بود میپرسه شما دیدینش؟ مرد میگه نه قربون من خواب بودم. صدایی زنگ در بیدارم کرد. دکتر این بار سوالش رو از دختره میپرسه. دختره میگه نه منم ندیدمش. منم خواب بودم. ولی بیدار شدم دیدم پدرم داره صدام میکنه. اینقدر ترسیدم که نزدیک بود سکته کنم. آخه اولش خیال کردم دزده اومده خونه خود ما. دکتر برمیگرده رو به پیرمرد و میگه: "پس شما دیدینش دیگه، نه؟" پیرمرد جواب میده: "بله آقا، من دیدمش." دکتر میپرسه: "خب چه شکلی بود؟" پیرمرد میگه: "یه حیولای غریبی بود آقا." دکتر براش سوال پیش میاد که خب اصلا پیرمرد از کجا فهمیده طرف دزده؟ پیرمرد میگه: شایدم دز یه قاتل بوده، یه کار بوده." شاید هم یه چیزی بدتر از همه اینا. خلاصه هرچی که بوده الان تو این خونه متروک است. مکانیک به پیرمرد میگه تو کجا بودی که دیدیش؟ پیرمرد یه پنجره روشن رو نشون میده و میگه مسترا. البته خلاف عدبه بنده یه ناراحتی دارم که مجبورم شبیه 7 دفه دفعه این تو. بعدشم که چشمم افتاد بهمون تو عمرم همچین چیزی ندیده بودم. انگار دو تا آدمو به هم دوخته باشن. بابای مدرسه میپرسه یعنی اینقدر قدش بلند بود؟ پیره مرد میگه نه مثل اینکه از وسط شقش کرده باشن دو تا هم سر داشت یکی از سراش جلو جلو میرفت که هم دنبالش مادره میکنیم که تجب کرده میگه یا حضرت عباس این دیگه آدمیزاد نبوده ا محل یه خورده سالات پرت میپرسن مثلا میگن دم داشت شاخ داشت و پیرمرد هم میگه نه نداشت درست هم ندیدتش پیرمرد مرد ولی مطمئن چیزی که دیده واقعی بوده مادر مکانیک در ادامه ای همین سوالات میپرسه از ما بهترون نبود قبل از پیرمرد دکتر با لبخند میگه نه مطمئن باشید از ما بهترون نبوده بعد همین دکتر جویا میشه که دزده تفنگ و اسلحه و از این چیزا نداشته بعد میپرسه چطوری راه میرفته تا اینکه مکانیک جلوش رو میگیره و میگه بزرگ برای اصلا این سوالا چه فایده داره چی میخوای از اینا در بیاری دکتر میگه اجازه بده آقا من منظور دارم از سوالا پیرمرد میگه یه چیزی شبیه اسلحه از این برونبرش آویزون بود ولی مطمئن نیستم راه رفتنش هم شبیه این بود که به جای پا چرخ داشته باشه مادر مکانیک میگه خدا خودش رحم کنه به همون. دکتر همچنان سوالاتش رو ادامه میده و این بار میپرسه که خیلی عذر میخوام سرکار کار چقدر شام خوردین شما دخترش جواب میده که اندوزی هر شب خورده دکتر میگه رادیو تلویزیون چی پیرمرد جواب میده ما تلویزیون نداریم رادیو هم نه ندادم. دکتر میگه خب خیلی ببخشید پس پخت که تنها هستید چیکار میکنید؟ پیرمرد جواب میده مطالعه آقا من مطالعه میکنم دکتره باز میگه خب چطور کتابایی میخونی؟ پیرمرد جواب میده که من کتابای قدیمی میخونم بیشتر مطالعاتم هم, هم راجع به علوم خفیه، اسرار غیب و این زمینه هاست امشبم قبل از خواب داشتم بحثی راجع به علم جفر میخوندم تو پرانتز بگم که جفر علم تفسیر اعداد و اسما و تحلیل اوناست. دکتر میپرسه جفر یعنی چی؟ یعنی همون جنگیری؟ پیرمرد میگه چی میگی آقا جان مگه من جنگیرم؟ مپحث احزار روح و علوم قدیمه و معرفت و روح. دکتر که احتمالا هیجان زده است بلند میگه آقایان قضیه حل شد. ایشون گرفتار هالوسیناسیون شدن. مکانیک هم مثل ما براش سوال پیش میاد که چی میگی؟ چیه این که میگی؟ دکتر میگه توهم بله آقا جان توهم یکی از حضار داد میزنه که بابا اینا همش به نظرش اومده پیرمرد میگه چی میگی چی به نظرم اومده با چشمایی خودم دیدم دکتر با اطمینان تمام مدعی اینه که پیرمرد به دلیل خوردن شام سنگین و خوندن کتابای اهضار ارواح و همینطور داشتن بیماری هایپرتروفی پروستات متوهم شده و تخیلات غیرواقعی دیده این بیماری که دکتر عرض کرد یکی از عواقبش بی اختیاری ادراره. همه اهالی حرف دکتر رو قبول دارن و از اینکه پیرمرد اونارو نصف شبی زابرا کرده شاکین. اما پیرمرد هنوز قسم میخوره که مطمئنه و میگه اگر باور ندارید برید و با چشمای خودتون ببینید. دکتر اما همه رو تشویق میکنه که به خونه‌هاشون برگردن و راحت بگیرن بخوابن. اهالی هم اعتنایی به اصرارهای پیرمرد نمیکنن. مکانیک رو به پیرمرد میگه بعد از این هر وقت خیالاتی شدی زنت رو بیدار کن. پیرمرد جواب میده من زن ندارم. همه اهالی میزنن زیر خنده. دکتر میگه بنده به عنوان طبیب توصیه میکنم یک مسحل قوی و چند قرص خواب مصرف کنید. مردم اینجا متوجه دکتر بودن دکتر میشن و با علاقه و مهربونی نگاش میکنن. پیرمرد ولی همچنان اصرار داره که داخل خونه متروک دزد اومده. نظر دخترش اینه که برگردن خونه و بیشتر از این آبروریزی نکنن. دختر خجالت زده است و قصد داره پدرش رو به داخل خونه ببره. پیرمرد آخرین تلاش هاش رو برای نگه داشتن اهالی میکنه تا اینکه ناگهان مرد روی بالکن ظاهر میشه و داد میزنه که کجا میرین؟ همه برمیگردن سمت صدا. مرد روی بالکن میگه همه حرفای پیرمرد درسته منم هم دیدمش همه ساکت و مبهوت به هم نگاه میکنن پیرمرد هم به خاطر پیدا شدن شخصی که اونو تایید میکنه بسیار خوشحاله. مردم شروع میکنن درباره دزده از مرد روی بالکن سال کردن مرد روی بالکن میگه یه حیولای درسته حسابی بود سلانه سلانه اومد و رفت توی اون خونه مردم دوباره فریاد میزنن آی آیدوز، آی دوز، و از این طرف و اون طرف میدونن. بعد از چند لحظه یهو همشون وای میستن و به مرد روی بالکن خیره میشن. مردم از مرد روی بالکن میپرسن اگر خبر داشته و دیده که دزد اومده چرا نمیاد پایین؟ مرد روی بالکن در جواب میگه از اینجا راحت تر میتونستم خونه مطروک و شما رو بپام. شما هم سرگرم جر و بحث بودید و ممکن بود یارو بذاره بره حالا مگه چیزی ببینم فوری خبرتون میکنم مرد روی بالکن خطاب به دکتر میگه من نه پرخوری کردم نه کتاب ارواح خوندم و نه حتی گرفتاری ادرار دارم فقط از سر شب یه پنج سیری نمنمک رفتم بالا یه خورده همچین شنگولم منظورش اینه که مشروبات الکلی خورده و بعد رو به همه میگه بفرمایید بالا مجلس بیریاست. مردم مجددن از مرد روی بالکن میخوان که به جای این حرفا بیاد پایین تا با هم همفکری کنن ولی مرد روی بالکن زیر بار نمیره مردم که حالا گلهمند شدن میپرسن مگه تو مال این محل نیستی چرا خودتو کشیدی کنار مرد روی بالکن در جواب میگه بابا جان دست خوش شما داشتین راهتون میکشیدین که برین من از هیچ خطری باکیم نیست خوابم هم سبکه اهالی دور هم جمع میشن و به خونه متروک نگاه میکنن دکتر میگه این خونه مالکیه؟ بابای مدرسه میگه الان چند ساله که این خونه همینجوری هست. اون وقتا که اینجا برو بیابون بود نمیدونم رو چه اسامی بهش میگفتن مرده خونه. حتی یه وقتی هم بهش میگفتن ژاندارمری. دکتر میپرسه خب حالا صاحب داره یا نه؟ بابای مدرسه میگه یه وقتا میگفتن داره، یه وقتا هم میگفتن نداره. بعد ادامه میده و میگه آقای مدیر ما میخواست اینجا رو واسه مدرسه بخره. خیلی هم این در و اون در زد، چندتا نشونیم دادم بهش، اما هر چی گرفت بالاخره فهمی صاحب درست حسابی اینجا کیه بعدم منصرف شده و به همین زمینی که الان مدرسه است رو خرید و ساخت بعد از مدتی دکتر میگه تنها راه حل حضور نماینده قانونه مکانیک اما یادآور میشه که محله کلانتری نداره و حتی مشخص نیست این محله جزء شهربانیه یا ژاندارمری دکتر میگه به هر حال صلاح اینه که یه جوری خبرشون کنیم حالا مسئله مهم اینه که کی بره و به کلانتری خبر بده همه به هم نگاه میکنن و بعد نگاه ها میره سمت بابای مدرسه. بابای مدرسه میگه من چطوری پیاده برم؟ انصاف داشته باشین تا من برم و بیام آفتاب سر زده. مرد روی بال کنم با تایید حرف بابای مدرسه میگه کسی بره که ماشین داره تا بتونه سری بره و برگرده. همه متوجه دکتر میشن. دکتر اما سعی میکنه به روی خودش نیاره و بهونهایی مثل اینکه من یه ماشین دارم اما رانندم رفته شهر ماشینم هم خاصی داره، سویچش پیشم نیست و اینجور بهونه ها میاره همه این حرفها تو شرایطی گفته میشه که توی جمع مرد مکانیکی هست که ادعا داره هر ماشینی رو میتونه رام کنه و بدون سویچش روشنش کنه دست آخر مرد روی بالکن به دکتر میگه یه بارکی بکن نمیدم خودتو خلاص کن دیگه دکتر هم برف روخته جواب میده به شما مربوط نیست حضرت آقا مرد روی بالکن میگه چطور به من مربوط نیست یه محله در خطره مردم با نگاهشون خواهانه اینن که دکتر ماشینشو بیاره اما دکتر همچنان به روی خودش نمیاره مرد روی بالکن میگه حالا که ماشین آقای دکتر خرابه تنها چاره اینه که دست بیکی کنید و یارو رو توی خونه خودمون دستگیر کنیم. حالا که وقت عمل شده همه ترسیدن همه اهالی احالی مرددن دکتر میگه دست جمعی فایده نداره یکی بره تو ما هم از بیرون مراقبش باشیم مرد روی بالکن میگه طرف هول کرده ترسیده دکتر اما حرفش رو رد میکنه بعد به خاطر همین دوباره مرد روی بالکن بهش میگه خیلی خوب، حالا که نترسیدی برو تو دستگیرش کن چون همه ما میترسیم دکتر میگه مگه من دیوونم خودم و تو خطر بندازم مرد روی بالکن جواب میده پس مرگ کو اما واسه همسایه آره پیده مرد از این جر و بحثا کلافه میشه و تنهایی قصد رفتن به خونه متروک رو میکنه اما اهالی جلوش رو میگیرن این وسط بین مردم توی کوچه و مرد روی بالکن یه بحثی شکل میگیره که توش مردم میگن اگه مرد روی بالکن آدم دلسوز و راستگویی باشه باید بره پایین و کنار اونا وایسه میونه هم همه اهالی صدای یه موتور شنیده میشه مردم راه باز میکنن که اون موتوره اون تاکسی البته وارد میدون بشه و با دیدن مردم ترمز میکنه مردی با کلاهی عجیب و عینکی تیره که روی چششه سرش رو از پنجره میاره بیرون میپرسه که چه خبره مردم خبر از وجود حیولایی توی خونهی متروک میدن و ازش میخوان که حالا که ماشین داره به کلانتری خبر بده رانندهه با اصرار زیاد مردم راضی میشه و میره که کلانتری رو خبر کنه خیال احالی محل تا حدودی راحت شده ولی مرد روی بالکن میگه مگه بالاتر از اینجا خونه ای هم هست. این یارو کجا میرفیه کنیم بعد از نصف شب؟ آخه چطوری بهش شک نکردین؟ چرت داش میومد اینجا از کجا معلوم همدست یارو دزه نبوده. اومده دیده هوا پس گذاشته رفته. به اینجور آدما میگن رفیق دوست شریک قافله. حالا توجه اهالی کاملا به مرد روی بالکن جلب شده. دکتر میپرسه که خب اون چه پیشنهادی داره؟ مرد روی بالکن خونسرد سیگار روشن میکنه و میگه هر جور شده باید کلک یارو رو کن پیشنهاد میده که از تفنگ استفاده کنن اما کسی حرفی از داشتن تفنگ نمیزنه مرد روی بالکن شاکی میشه و میگه یکی که ماشینش رو نداد تونم که جا زدید حالا هم لابد نوبتمونه که تفنگ داره و نمیده رو میکنه به یکی از مردها که اسم پرسوناجش همون مرده و بهش میگه که نظر شما چیه؟ مرد جواب میده من تفنگم کجا بود؟ مرد روی بالکن میگه دارم درباره همون توفنگی حرف میزنم که جمعه ها بعد از دوش اول صبت برش میداریم میبریش بالای کو مرد اولش تعجب میکنه اما بعدش توی رودربایسی اهالی قبول میکنه ولی شرط میذاره که مسئولیت هر اتفاقی که بیفته به عهده خودشونه مرد روی بالکن بعد از رفتن مرد جاش رو عوض میکنه و از روی بالکن به داخل خونه مطروک سرک میکشه و میگه دو اومده نشسته روی پله ها. انگار داره یه چیزی رو تیز میکنه. بعد خم میشه و با خوشحالی به مردم میگه خب دیگه تیز نمیکنه بقیه هم از این حرف خوشحال میشن. مرد روی بالکن باز ادامه میده که حالا صاف نشسته و کلش رو تکون میده، وای, وای وای وای وای داره توفنگش رو میخوره. مکانیک با تجرب میپرسه چیکار میکنه؟ مرد روی بالکن با تکید بیشتری دوباره میگه تفنگش رو میخوره. مکانیک میگه مگه تفنگم میشه خورد مرد روی بالکن جواب میده من چه بدونم اونها شو دهنشه شاید هم داره با تفنگش دندوناشو خلال میکنه مکانیک براشفته میشه میگه بابا این یارو ما رو دست انداخته به خدا داره مسخرمون میکنه مرد روی بالکن عصبانی میشه میگه حالا که اینطوره اصلا خودتون میدونید و خودتون به من چه بعد با دلخوری پشت میکنه به همسایه ها و شروع میکنه به سیگار کشیدن. مردم یکی یکی صداش میکنن و خواهش میکنن که برگرده رو به جمعیت تا کمکشون کنه مرد روی بالکن بعد از اینکه حسابی سر اهالی منت گذاشته میگه کسی دیگه حرفی وسط حرف من نمیزنه تو کار منم فضولی نمیکنه همه قول میدن حرفی نزنن پس دوباره مرد روی بالکن بلند میشه و به خونه متروک خیره میشه شروع میکنه به دید زدن و میگه داره یه چیزی رو تیکه پاره میکنه اوه oh, اوه oh, فکر کنم داره زور و بازوشو امتحان میکنه اینو در حالی میگه که دست خودش رو روی بازوی دست دیگش گذاشته و یه چیز بامزم یادش افتاده و داره بهش میخنده. از همسایه ها هم به خنده میفتن. بعد یهو یه خندهش قطع میشه، روی بالکن میشینه، مردمم یک مرتبه بدون اراده روی زمین میشینن. بعد بلند میشه، مردمم آروم آروم بلند میشن. مرد روی بالکن یه لحظه میترسه، میگه اوه، او نزدیک بود منو ببینه. بعد میگه خب حالا داره نقشه میکشه. بعد میگه که نه نه مثل اینکه داره خوابش میبره. خب مثل اینکه خوابش برد. مردی که تفنگ داشت با تفنگش برمیگرده و اهالی میدونن که حالا که حیولا خوابه بهترین فرصت واسه کشتنشه و باید کسی بره و کار رو تموم کنه. اما باز موضوع اینجاست که کی این کارو بکنه. اول از پیره مرد میخوان اما قبول نمیکنه. بعد از صاحب توفنگ میخوان که خودش این کارو بکنه. اما اون میگه حاضر نیست خودش رو توی مخمسه بندازه. مرد روی بالکن میگه اصرار داره که اهالی به خاطر مسئولیت‌هایی که دارن نباید این فرصت طلایی رو از دست بدن و فکر میکنه که اگه الان کاری نکنن بعداً دیگه خیلی دیره. مردم شاکی میشن که چی میگه بیرون از گل؟ اما مرد روی بالکن اعتنایی نمیکنه و میگه ترس مثل خون توی رگ‌های شماست. ترس شما رو فلچ کرده. شما دیگه نمیتونید تکون بخورید. همه ساکت میشن. تا اینکه ناگهان تاکسی بار وارد میدون میشه، خبرنگار قد بلندی سرپا پشت وانته وایساده و دم و دستگاه عکاسی به گردنشه راننده ای تاکسی بار پیاده میشه و میگه این آقا خبرنگاره و پلیسم الان میاد و میپرسه که با ما کاری نداری؟ مردم هم ازش تشکر میکنن و راننده میره. خبرنگاره اونطوری که خود سایدی نوشته خیلی قرتی شروع میکنه به سوال و جواب کردن. مردمم واسش توضیح میدن که قضیه از چه قراره. بعد خبرنگار از محل عکس برداری میکنه و اهالی با شوق و ذوق جلوی دوربین خبرنگار صف میبندن خبرنگار وقتی که متوجه میشه پیرمرد حیولا رو به چشم دیده ازش میپرسه هیولا چجوری جوری اومه چه کارایی کرد و چطوری رفت توی اون خونه پیرمرد تا میاد توضیح بده خبرنگار میگه خب الان فرض کن شما هیولایی و اینطوری سوال منو جواب بده پیرمرد متوجه شده که باید ادای رو در بیاره. به خاطر همین از صحنه خارج میشه و با چشمهای دریده دستهای چنگ شده و اندامی قوس کرده گشاد گشاد راه میاد و خورناس میکشه و همینجوری سلانه سلانه به سمت خونه متروک میره. اهالی با تعجب بهش نگاه میکنند. دخترش اصرار میکنه که پدرش از این کار دست برداره ولی عکاس مدام عکس میگیره. خبرنگار قبل از رسیدن پلیس از مردم میپرسه که نظرشون درباره اتفاقی که امشب افتاده چیه؟ در واقع جواب مردم این سوال خبرنگار توی نمایش اینطوریه که حرف زدنه بیشتر داره اون طبقه و سطح تفکرشون رو نشون میده. تو جریان همین پرسش ها، خبرنگار اول واسه دختر پیرمتی خودشیرینی میکنه که مرد روی بالکن خیلی سری ضایش میکنه به خاطر همین خودشیرینیش. از اون طرف مرد معتقد امنیت خیلی اساسیه. مکانیک خیلی ناشیانه لفظ قلم میگه تصمیمات اولیای امور تنها زامن بقای ملک و مملکت است و بعد میرسیم به دکتر دکتر خیلی لفظ قلم ضمن معرفی خودش اول از کمبودهای محله صحبت میکنه مثل نداشتن معمور استحفاظی و آسفالت و احتیاج محله به تلفن و برق و اینا بعدم میگه محله یه اسمی خود و من حاضرم از اسم و شهرتی که در تبابت به خاطر هم عزیز کسب کردم استفاده کنم و کوچه رو به اسم دکتر صباتی نامگذاری کنم خواهش میکنم این مسئله اخیر رو با حروف درشت در روزنامه منعکس کنید مرد روی بالکن میخنده و میگه این جناب دکتر دنبال خره مرده میگرده که نهلشو بکنه بعد رو به خبرنگار پیشنهاد میده که اسم محله رو بزارن لوتی محله صدای آژیر پلیس به گوش میرسه مردم کنار میکشن و خبرنگار مدام چیک چیک عکس میگیره یه افسر و یک پاسبان وارد صحنه میشن و دکتر هم جلو میره با افسر دست میده و دست افسره رو نگه میداره بقیه هم میرن پشتشون و عکاس از این صحنه عکس میگیره افسر جویای حادثه میشه و خبرنگار توضیح میده که به گفته اهالی یه حیولا توی خونه متروک قایم شده. افسر میپرسه صاحب خونه کیه و وقتی میفهمه که خونه انگار صاحبی نداره میگه نمیتونیم وارد خونه بشیم چون نیاز به اجازه صاحب خونه یا اجازه نامه رسمی از دادستان داریم. پس با وجود این دیگه تا حداقل فردا نمیشه کاری کرد و به اهالی میگه که پاسپان رو میذاره تا مراقب اوضا باشه. و از مردم میخواد تا با خیال راحت بگیرن تو خونه هاشون استراحت کنن تا فردا. اهالی رازی و افسر به اتفاق خبرنگار از صحنه خارج میشه. ناگهان صدای افتادن جسمی از خونه متروک به گوش میرسه. همه بی حرکت وای میستن. همه ترسیدن و با وحشت از مرد روی بالکن میپرسند چی شده؟ مرد روی بالکن میگه دوسته بیدار شده؟ و داره خودشو جمع و جور میکنه مادر مکانیک پسرشو عقب میکشه و دخترم از پدرش میخواد که برن توی خونهشون ترس همه جارو فرا گرفته اهالی از مرد روی بالکن میخوان که مواظب اوضاع باشه سر و صدا همچنان از داخل خونه به گوش میرسه مرد روی بالکن در حال تعریف کردن چیزایی که میبینه میگه هرچی سر راهش داره میندازه زمین اوه او سر و صدا نکنید که داره میاد همه دست به دامنه پاسبانه شدن پاسبانه از اهالی میخواد که برند داخل خونه هاشون قایمشن همسایه ها فرار میکنن و پشت درا و نفش کوچه ها جا میگیرن پاسبانم توفنگ به دست گوشهی کمین میکنه در خونه با صدای بلندی باز میشه اول یه دست با چوب دستی به بیرون دراز میشه چند لحظه بعد یه عروسک خیلی بزرگ و پشت سرش پیرزن خمیده که کل خرتوبرت بهش آویزونه وارد صحنه میشن پیرزن عروسک رو زمین میذاره و روی پله خونه میشینه و مشغول سق زدن یه تیک نون میشه مرد روی بالکون در حالی که از خنده بی تاب شده میگه ننه علی ای ننه پیرزن سرشو بالا میاره و بی توجه و بی صدا میخنده مرد روی بالکون گیلاس پرشدهی دستشه و میگه خوب چزوندیشون اینو میرم بالا به سلامتی تو ننه مردم بوه زده به پیرزن نزدیک میشن و نگاهش میکنن صحنه نمایش توی پرده دوم همون مختصات صحنه نمایش توی پرده اول داره دیگه از توصیف اونا میگذرم شب هم مثل پرده اول از نیمه شب گذشته صحنه خالیه تنها چراغ خونه بالکندار و چند چراغ خواب توی چند تا خونه دیگه روشنه ادده هرامی آروم آروم از کوچه روبروی وارد میشن همشون خنجری به سمت چپ کمر و دست کلیدی به سمت راست کمرشون بستن. بی سر و صدا میان و وارد خونه متروک میشن. چند لحظه بعد چراغ راه پله خونه پیرمرد روشن میشه و صدای بگو مگوی شدیدی از پشت در شنیده میشه. دختر که دو دستی پدرشو گرفته مانع بیرون اومدنش میشه و میگه این دفعه دیگه نمیذارم بری بابا. پیرمرد میگه چی میگه خودم دیدمشون ولم کن دختری احمق بذار ببینم چه خاکی باید به سرمون بکنیم دختر میگه ببین بابا دیگه نمیذارم مسخره اهل محل چی حالت خوش نیست دیگه به خدا این همش خیالاته خواب دیدی به خدا پیرمرد میگه خواب چیه مگه پشت پنجر این میشه خواب دید دختر اگه دیر به جنبی میریزن و تمام محله رو کنفیکو میکنن بحث بین پدر و دختر همچنان ادامه داره که پیرمرد میگه نمیشه دست روی دست گذاش میگه که باید همسایه ها رو خبر کرد. دختر اما میدونه که این بار دیگه کسی حرفای پدرش رو باور نمیکنه پس تمام مدت سعی میکنه جلوی پدرش رو بگیره حتی پیشنهاد میده که از پشت پنجره خونشون کشیک بدن که اگه خبری شد اون وقت از به کار بشن اما فایده نداره. پیرمرد میگه اگه دیر اقدام کنه کار از کار میکسره. دختر که انگار باورش شده پدرش مشکل روحی داره بهش میگه بابا تو بیابرون نکن تو حسابت مریزه. پیرمرد که حسابی شاکی شده میگه حرف دهن تو بفهم. همچین میکوبم هم تو دهنت که دندونات بریزه تو شکم. از دست دختر رها میکنه و میاد وسط میدون. پیرمرد یه گوشه کمین کرده تا بره و همسایه بالکن دارو خبر کنه که یهو درباز میشه و مرد روی بالکن وحشت زده وارد میدون میشه. همون مردی که توی پرده قبلی از روی بالکن جم نخورده بود. انگشت روی لب میذاره و میگه یواش و به خونه مطروک اشاره میکنه پیرمرد میپرسه شما هم دیدینشون دختر سری میگه دروغ میگه آقا خیالاتی شده به نظرش اومده مرد روی بالکن میگه چه خبر دختر خانم آرومتر میشنافن دختر زده میپرسه میشنافن کیا میشنافن بعد روم میکنه به پدرش و میگه بابا به خدا این دستت انداخته مسخرهات کردی ها رو در میاره که به ترسونته بعدش بگیره بهت بخنده پیرمرد میگه خفه خون بگیر صداتو ببور. دختر مستعصله و به سمت خونه خودشون حرکت میکنه حالا پیرمرد و مرد روی بالکن توی صحنه مرد روی بالکن میگه باید مردم رو خبر کنیم میره و در چند از خونه ها رو میزنه و منتظری میمونه یکی از اهالی از پنجره به بیرون خم میشه و میپرسه چه خبر شده پیل مرد میگه دزد آقا دزد یه عالمه دزد مرد روی بالکن هم میگه بیاین پایین کمک کنین یه حرومی اومدن یه حرومی دختر میگه بابا دروغه دروغ میگن آقا باور نکنین مرد روی بالکن و پیل مرد به سمت دختر حمله میکنن ولی دختره فرار میکنه پشت در پنهم میشه مرد روی بالکن ادامه میده این دفعه قضیه جدیه حضرت آقا اون تو پره مرد میپرسه پره از چی پره مرد روی بالکن میگه از یک دوست، حرومی، از ناشناس. ناشناس اما تجربه دفعه پیش باعث شده که مرد حرفاشو باور نکنه مرد روی بالکن خواهش میکنه که مرد حرفاشو باور کنه و میگه قصد بدی نداره و اصلا کلک دیگه این بار تو کار نیست پیرمرد میگه به سید و شهده به دو دست بریده ی که اگه دروغ بگیم مرد روی بالکن میگه این دفعه ما هر دومون دیدیم مرد میپرسه پس تو هم دیدی آره؟ به حالا دیگه صد درصد باورم شد این البته خب با تنه و کنایه میگه و بعد رو به پیرمرد میگه پدر من تو چرا عقل تو میدید دست این برو بخواب آخه این مردم و ها چه فایده ای داره؟ پنجره رو میبنده و میره تو پیره مرد و مرد روی بالکن داد میزنن که آقا آقا گوش کنین بعد ناامید هم دیگه رو نگ مرد روی بالکن میگه نمیشه ولشیت به امون خدا. باید دیگرون رو خبر کنیم. هر دو یک مرتبه با هم فریاد میزنن که آهای کمک کمک. دوست دوست. پیرمرد و مرد روی بالکن فریاد زنان توی کوچه ها گم میشن. صدای زنگ خونه ها و مشت هایی که به در میکوبن به گوش میرسه. فریاداشون تموم فضا رو پر کرده. آدم های محل یک به یک پیداشون میشه در حالی که خوا و لباس خواب بتن تن دارن. دکتر میپرسه چه خبر شده؟ پیرمرد میگه آقای دکتر به داد برسین. همه در خطریم. جون و مال و ناموس همه در خطره. به خیال اهالی اما قضیه مثل مسخره بازی اون شب که باز داره تکرار میشه. پیرمرد اصرار میکنه حرفشو باور کنن و شروع میکنه به شرح دادن هاش و اینکه دیده خونه متروک پر شده از ید حرومی اهالی اما فکر میکنم بازم کتابی چیزی خونده. مادر مکانیک به دختر پیرمرد میگه اگه شب یه خورده کمتر بدی بخوره سر دلش خالی باشه دیگه اینجور خوابای آشفته نمیبینه مرد مکانیک می‌پرسه ببینم هرومی هرومی میکنین هرومی دیگه چه سیغه ایه بابای ای مدرسه جواب میده هرومی مال قصه هاست. قدیما به دوزای سر میگفتن هرومی. پیرمرد از مردم میخواد فکر چاره‌ای باشن که دخترش رو به جمعیت میگه حرفاشو باور نکنین، خواب دیده باز خیالاتی شده پیرمرد عصبی میگه من خیالاتی شدم الان پوستتو میکنم خفت میکنم باز به سمت دختر حمله بر میشه و باز دختر به داخل خونه فرار میکنه پیرمرد برمیگرده رو به جمعیت و میگه بابا با چشمای خودم دیدم اگه من اشتباه میکنم یعنی ایشونم اشتباه میکنه داره به مرد روی بالکن اشاره میکنه یکی از اهالی میگه من فکر کنم همه این بازی ها این یارو هست. بازم مرد روی بالکن رو میگه و میگه هر شب میخواد یه بامبولی در بیاره. دختر ادامه میده: بله آقا، همش تقصیر اونه. اون پدرم پدرمو وادار کرده که داد و فریاد را بندازه. بابای مدرسه میگه همش هم تقصیر اون بطری است. من میدونم اون لامه سب چه خاصیتی داره. میخوره، کلش گرم میشه، میفته به جون ملت. مرد روی بالکن میگه ما میگیم اون تو پره، شما باورتون نمیشه. تجربه اون شبو چی میگیم یادتون رفته بهتون چی گفتم؟ اهالی که تجربه خوبی از اون شب ندارن میگن چرا یادمونه یه سری پرت و پلا و اهانت که لایق خودت بود گفتی مرد روی بالکن میگه اون حرفهای آخرم چی یادتون نیست اهالی اما به هیچ عنوان سر سازگاری با اونو ندارن یکی از اهالی بهش میگه خیال میکنی نمیدونم تو مأموریت داری تو جاسوسی واسه این کاراتم پول میگیری آقایون معلوم این مرد چه خیالات بدی داره میخواد همه ما رو بندازه به جون هم امنیت و آسایش مردم از بین برده مکانیک میگه اصن حرف حسابت چیه؟ مرد روی بالکن خیلی خونسر جواب میده. حرف حساب من اینه که میخوام بچاپنتون. میخوام دخل همتون رو بیارن. بازم اینگار، نه اینگار. حرفاش هیچ تأثیر روی اهالی نمیذاره. شاید بعضی یکم ترسیده باشن اما کسی به حرفای مرد روی بالکن اعتماد نداره. یکی از اهالی بهش میگه الان نصف شبه دیگه. خب الان تو بگی نصف شبه من میگم نه نصف روزه. یعنی اینقدر باهات بدیم، اینقدر باهات لجیم مرد روی بالکن میگه خب بد باشین لج باشین دودش میره تو چش خودتون این دیگه جر و بحث نداره من میگم با چشمای خودم دیدم که اون یه اده اومدن رفتن تو پیره مرد بازم اصرار میکنه که یه کاری بکنن و وقت رو هدر ندن اما بازم دخترش میاد و حرفایی که قبلن زد رو تکرار میکنه میگه مرد روی بالکن هیچی ندیده اصلا تو اتاقش بود وقتی بابا اومد بیرون اونم اومد پایین داره ادا در میاره میخواد پدرمو دست بندازه الانم میخواد شما رو مچل کنه و بعد بهتون بخنده مکانیک میگه قبول اصلا اون تو پر دزه به تو چه خونه ما رو خالی میکنن تو وکیل وسی مایی بقی هم دنباله حرفشو میگیرن و هر میشونم کلی حرف باره مرد روی بالکن میکنن مرد روی بالکن میگه درسته همه این های شما قبول هر چی بگید هستم خرمگس هست، مردم هر چی که بگید اما این دفعه موضوع جدیه میبینید که خودم هم اومدم پایین اومدم بین شما چون میدونم تنهایی نمیشه کاری از پیش برد اهالی میگن خب حالا از ما چی میخوای مکانیک میگه من میدونم چی میخواد یه فست کتک حسابی میخواد اگه صدای تو رو خفه کنیم وقت همه چی درست میشه و با مشتهای گره کرده جلو میان اهالی از شروع درگیری جلوگیری میکنن و از مرد روی بالکن میخوان که برای ختم ماجرا بره داخل خونش. اما نکته اینجاست که توی این شرایط هم بعضی از نزدیک شدن به خونه متروک واهمه دارن مثلا بابای مدرسه که کنار دیوار خونه متروک نشسته تا متوجه خونه متروک میشه با عجله جاشو عوض میکنه بگذاریم. مرد روی بالکن شروع میکنه به صحبت کردن میگه اگه اون شب پایین نمیادم علتش این بود که ترس شما بریزه داشتم جرأت شما رو میسنجیدم اگه اون شب در خونه ای متروک متروکو وا کردین و میرفتین تو اون موقع بهتون امیدوار میشدن دکتر میگه حالا دارید چیو میسنجی میبینی که کسی دیگه نمیترسه مرد روی بالکن میگه این دفع باورتون نمیشه این از ترس بدتره خودتونو زدید به بیخیالی من میگم خطر برای همه جدیه اگه باور ندارید خودتون امتحان کنید اهالی نه تنها حرفاشو جد نمیگیرن و میگم ما دیگه گول نمیخوریم بلکه مکانیک تهدیدش میکنه اگه زیاد حرف بزنه انقدر میزنتهش که جونش در بره و بعد به زور اونو داخل خونش میبرنش بعد از رفتن مرد روی بالکن اهالی دوره هم جمع میشن دکتر میگه آدم سالم به دست و پای مردم نمیبیشه. به نظر من یه مشکلی هست. یکی از اهالی میگه نه قربون این 100 درصد مأموریت داره. چطور تا حالا متوجه وضع مشکوکش نشدید؟ بابای مدرسه میگه اگه هر شب این رو در بیاره تکلیف چیه؟ دکتر میگه بهترین روش بی محلیه، ترین سلاح بی محلیه. مرد رو یه بالکن در خونه‌ش رو باز میکنه و میاد بیرون. با حالی به شدت ناراحت میگه آقایون یک لحظه به حرفای من گوش بدی. اما اهالی باز بهش حمله میکنن و داد و فریاد را میندازن و به زور بازم داخل خونهش میبرنش دکتر میگه آقایون تا کار دست خودمون ندادیم خواهش میکنم بریم داخل خونههامون پیرمرد درمونده و مستاصله دستاشو به نشونه التماس دراز میکنه و میگه کجا میخوایم بریم اونا رو میزاریم به حال خودشون هیچ میدونیم بعدش چطور میشه دکتر میگه هیچ طوری نمیشه پدر من تو برو خونه یکم قرص بخوره است کن حالت خوب میشه فردا بیا مطب اونجا ماییت کنم. خلاصه از پیل مرد اصرار از حالی انکار ما میکانیک به دختر پیل مرد میگه چراواستادی نگاه میکنی بیا ببرش خونه پدر تو مرد روی بالکن این بار از بالکن خونه سر و کلهش پیدا میشه و میگه چند کلمه ای باتون با حرف دارم آخه چرا نمی گوش بدین؟ چرا یه چیزو جدی نمیگیرید؟ یکی از میگه برای ما کودنی ما نمیده میفهمی. مرد روی بالکن میگه شما بچهای گنده رو باید برد سر کلاس عکابر و این جور چیزا و خیلی چیزای دیگر رو باید به زور توی کلهتون کرد تو پرانتز بگم دوباره اینطوری که ویکی‌پدیا نوشته سازمان تعلیمات عکابر اولین سازمانیه که به طور رسمی برای باسواد کردن بزرگسالان توی ایران در سال 1315 تأسیس شد یکی از مردای جمع جواب میده کلاس عکابر واسه تو لازمه که یه خورده تربیت یادت بدن مرتی بیشور بقیه هم که شاکن هر کدوم یه تیکه بهش میندازن. دکتر میگه آقایم خواهش میکنم اجل عمل نشون ندید. خون سرد باشید. خب موندن ما فایده است. بهتره برین داخل خونه آتون. شب همگی بخیر. بقیه هم پشت بعد از اینکه به مرد روی بالکن توهین کردن و یه عالمه تهدیدش کردن از صحنه میرن بیرون. دختر بازوی پدرش رو میگیره و میگه بریم تو بابا. پیرمرد رو میکنه به مرد روی بالکن و میگه همه رفتن. حالا چیکار کنیم؟ مرد روی بالکن میگه مگه نشنیدی برو با خیال راحت بگیر بخواب پیرمرد میگه بخوابم مگه میشه با التماس دستاشو جلو میاره مثل حالت دعا خوندن انگار از در و دیوار کمک میخواد مرد روی بالکن میگه حالا که نمیشه پس نخواب پیرمرد میگه تو چیکار میکنی مرد روی بالکن میگه من بیدارم و منتظر پیرمرد ازش میخواد بره پایین اما مرد روی بالکن میگه دوباره برم تو حالا که قراره هم از هم جدا باشم بهتر من سر جای خودم باشم آقداغله از اینجا بهتر میبینم و بهتر مراقب خودم هستم. پیرمرد میگه من چه کنم؟ مرد روی بالکن میگه هر کاری ازت برمیاد. پیرمرد میگه دستانا چه خاکی میتونم تو سرم کنم؟ مرد روی بالکن میگه پس کاری کن که تنها نباشی. ساکت نشین دادو فریاد کن نزار بخوابن. دختر میگه نه بابا نه این دفعه نه. بعد رو میکنه به مرد روی بالکن میگه مردی که بیشور چرا تحریکش میکنی؟ اما صدای فریاد آهای کمک کنید پیرمرد به گوش میرسه. دختر میگه بابا دستوردار دوباره رو میکنه به مرد روی بالکن و میگه تو هیچی نداری نه شرف داری نه آبرو داری از اینکه یه پیره مرد رو به کشتن بدی دلت خونک میشه دنبال پدرش را میفته و وقتی میبینه که کار به جایی نمیبره ناتوان یه گوشه میشینه و گریه میکنه پیرمرد همچنان فریاد زنان کمک میخواد و درارو میکوبه آخر سرم خسته و ناتوان به وسط صحنه میاد دیگه نمیتونه روپاهاش وایساد حال میره و کفه صحنه میافته. همسایه ها دوباره پیداشون میشه. پیرمرد رو دوره میکنن و همهشون مپوتو نگرانن. دختر از دکتر کمک میخواد و میگه آقای دکتر تو رو خدای کاریش بکنین. الان سکته میکنه. آخه ناراحتی قلبی داره. دکتر نبض پیرمرد رو میگیره و میگه بعضی ناراحتی داره. بابای مدرسه میپرسه سکته کرده؟ دکتر میگه سکته و از این خبرا نیست. فکر کنم یه نوع اختلال پیدا شده. اختلال یکی از دستگاه ها. مکانیک به مرد روی بالکن میگه اگر بلایی سر این بیچاره بیاد خونش گردن توه دکتر میگه بله آقا شما تحریکش میکنی. این آقا اعصابش ضرب دیده، روحیش مختل شده. مرد روی بالکن میگه خب اون روحیش مختل شده. من چی؟ شما اگه حرفاشو باور کنید ساکت میشه. مکانیک میگه تو اصلا عقل نداری. تو رو باید گرفت و زنجیر کرد. مرد روی بالکن میگه ما دوتا دیوانه ایم ایم میگیمون تو پره شما جمع اقلا باورتون نمیشه. خیلی ساده است. دارو وا کنی، برید تو. ببینید ما دیوونه درست میگیم یا دروغ. اینکه دیگه ماگی ای نمیخواد. اهالی میگه ما اون تو خبری نیست. میدونیم هدفته اینه که ما رو تحریک کنی تا بعدش به ریش ما بخندی. مرد روی بالکن میگه چه بهتر. حالا که مطمئنید برید تو تا مطمئن تر شید. مکانیک عصبی شده یک مرتبه میره جلو، در خونه مطروک و با لگت باز میکنه و با تهدید میگه هی کی اینجاست؟ هرکی اونتوه اون توه بیاد بیرون. ما بقیهم شروع میکنن داد و فریاد که آی اگه شرفدارین، اگه مردین بیاین بیرون. اما هیچ خبری نمیشه. پیره مرد هم کم کم به حال میاد، همه ساکت شدن و به مرد روی بالکن نگاه میکنن. میگن خب حالا چی؟ بازم حرفی داری؟ مرد روی بالکن میگه خب شما جای اونا باشید تو این شرایط بیرون میایین؟ اینجوری نمیایین بیرون که، باید خودتون برین تو. بابای مدرسه میگه مگه از جونمون سیر شدیم؟ مرد روی بالکن جواب میده مگه نمیگید خالیه؟ پس ترس نداره که. بابای مدرسه میگه احتیاط چرت مرد بالکن میگه باز احتمال داره که خبری باشه نه؟ مکانیک میگه ببین چجوری همه رو علاف کردی تو از جون ما چی میخوای؟ اصلا حالا که اینطوره از لجه تو هم شده من نمیذارم کسی بره اونطور. هر هرکی بخواد بره تو با من طرفه فهمیدین؟ بعد میره مثل یه محافظ جلوی در خونه مطروگ وای میسه مرد رو روی بالکن یهو فریاد میزنه هی hey! بپا مکانیک فریاد زنان فرار میکنه بد جوری ترسیده مادر مکانیک پسرشو میگیره و شروع میکنه آه و نفرین کردن مرد روی بالکن. بگومگووا بازم بالا میگیره و مکانیک که حالا حالش جا اومده باز شروع میکنه به تهدید کردن. میگه بلا ای سرت بیارم که بدونی با کی طرفی. دکتر مجددن به همه میگه که تا کار بالا نگرفته خواهش میکنم همتون برگردین توی خونه هاتون. پیرمرد اما همچنان خواهش و تمنا میکنه که نرن توی خونه هاشون بمونن و فکری بکنن. دکتر میگه بمونیم که چی بشه پیرمرد میگه آخه اونا اونا چی دکتر میگه اونا همش تو کله تو پدر جان تو به استراحت نیاز داری پیرمرد میگه استراحت چی مگه الان وقت استراحت به پیغمبر تو کله من نیست اونجاست من نمیذارم کسی بخوابه تا صبح داد و فریاد میکنم و در خونهتون از پاشته در میارم من ساکت نمیشم ای داد ای هوار به لباس مکانیک چنگ میزنه و شروع میکنه دادو فریاد کردن به بابای مدرسه آویزون میشه و اهالی اینطوری خودشون رو نوبتی از دستش رها میکنن. اما پیرمرد ساکت بشو نیست و مدام نعره میزنه. همه ناراحت و نگرانن. دکتر تکونش میده و سعی میکنه به هر نحوی شده آرومش کنه. بهش میگه باشه ما همه اینجا میمونیم. پیرمرد که حسابی در مونده و کلاف است وای وای کنان روی زمین میشینه و همه دورش جمع میشن. حالا دکتر سعی میکنه یه جوری پیرمرد رو معاینه کنه. اول بهش میگه زبونتو در بیار پیرمرد اول مقاومت میکنه اما با اصرار اهالی تسلیم میشه و رو میاره بیرون بعدش دکتر رو میگیره بعدش دوباره با همراهی اهالی کف پای پیرمرد رو میارم بالا و دکتر یه سوزنی رو که از مادر مکانیک گرفته میکشه کف پای پیرمرد پیرمرد فریاد میزنه و بالا پایی میپره بعدم یه فندک روشنو رو میگیره جلوی چشمای پیرمرد و ازش میخواد با یه چشم باز بهش نگاه کنه دختر دلواپسه و نگران حال پدرشه ا اما خاطرش رو جمع میکنن که خطری پیرمرد رو تهدید نمیکنه و این فقط یه ماینه ساده است دکتر فندک رو خاموش میکنه و میگه متشکرم دیگه تموم شد حالا گوش کنید حضرت آقا از بیست سه تا ستا کم کنید و بشمارید بیاید پایین پیرمت که حسابی کلاف و شاکیه از سر ناچاری فرامین دکتر رو انجام میده دکتر میگه حالا خوب برفی من گوش کنید. اگه شما توی خیابون پاکت پستی پیدا کنید که هم روش تمر باشه و هم آدرس اما به جای صندوق پست روی زمین افتاده باشه چیکار میکنید پیرمرد عصبانی میشه واقعا دیگه عصبانی میشه میگه ولم کنید این حرفا چیه سعی میکنه بلنجه که بابای مدرسه و مکانیک نگهش میدارن دکترم خواهش و اصرار میکنه که حتما پیرمرد بهش جواب بده سر پیرمرد با خشم میگه اون نامه هرو هست تیکه تیکش میکنم میکوبم سر هرچی آدم بیشرف و ناخلفه دکتر بلند میشه و سری تکو میده و میگه خب متاسفانه باید اعلام کنم که ایشون دچار یه سایکوسیس حاد و ناگهانی شدن توی پرانتز بگم که توی روانشناسی به حالتی سایکوسیس میگن که طرف نتونه واقعیت رو از خیال تشخیص بده دختر شروع میکنه به گریه کردن پیرمرد میگه دیوونه خودتی جد و جد دو آبادت شماها شرف نداری. پدر سوخته ها، بی پدر مادرها، دکتر جلوی اکسال عمل مردم رو میگیره و میگه که پرخاشگریم از عوارض اولیه جنونه. مزیفه تکت تک ما اینه که ایشونو به هر نحوی شده ببریم خونه. دکتر به کمک مادر مکانیک در خونه شونو میکنه. دو تا از اهالی یک مرتبه به پیرمرد نزدیک میشن و دست و پاشو میگیرن و بلندش میکنن. پیرمرد فریاد میزنه. و با تکون دادن دست و پاش موفق میشه خودشو از دست اونا رها کنه و شروع میکنه به داد و فریاد زدن دکتر میگه اینجوری نمیشه با این وصل تا صبح آروم نمیگیره ممکنه به خودش یا بقیه هم آسیب بزنه شما اینجا مواظبش باشید تا من برگردم تو این فاصله پیرمرد روبه حالی میگه شما چه جور هستید چرا هیچی باورتون نمیشه من حالم خوبه دکتر با پارچه آب و یه شیش قرص بزرگ وارد صحنه میشه و نزدیک پیرمرد میره پیرمرد با دیدن قرصا میپرسه اینا چی دکتر میگه چیزی نیست قرص خوابه شماید استراحت کنید. مردم هم به پیرمرد اصرار میکنن که قرصا رو بخوره. اما پیرمرد مشکوک و مستحصله. مرد رو روی بالکن که توی مدت سکوت کرده بود با صدای بلند میگه های نخوری یا ها. میخوان نابودت کنن. پیرمرد که به همه شک داره میگه شماها دست دستپیکی کردی من نمیخورم. نه نه نه من این سمو نمیخورم. دکتر میگه بابا سم کجا بود این قرص خوابه؟ بابای مدرسه میگه من اگه تا حالا نخوردی خیلی خوشمزه است واسه سردرد کمر درد، همه چی خوبه پیرمرد میگه من نمیخورم. شما میخواید منو مصفون کنید من منو بکشین بلند میشه تا فرار کنه اهالی میدوند دنبالش رو میگیرنش دختر میگه ولش کنید تو رو خدا رحم کنید بهش پیرمرد رو میارن وسط صحنه و روی زمین میشوننش پیرمرد همچنان فریاد میزنه تا ولش کنن دکتر میگه دهنشو وا کنید؟ مکانیک سعی میکنه دهن پیرمرد رو وا کنه پیرمرد که خودشو بیدفاع میبینه میگه تو رو خدا ولم کنی. چی چیکارم دارید غلط کردم نکشین منو اصلا دروغ گفتم دروغ گفتم دیگه نمیگم من اصلا هیچ چی ندیدم همش دروغ بود به خدا دروغ میگفتم دکتر میگه حرفاش توجه نکنید بیمار در شرایط استرار های انکار میکنه مکانیک دهن پیرمرد رو باز نگه میداره دکتر میزنه و با یک مشت قرص دهن پیرمرد رو پر میکنه بعد به شکلی آب میده و پیرمرد با چند قلوپ آب قرص رو میبلعه اهالی با لبخند پیروزمندانه ای همو نگاه میکنن مرد روی بالکن میگه آفرین بالاخره پس ساکتش کردید پیرمرد سعی داره بلندشه اما نمیتونه میگه این چی بود به خوردم دادین حالم داره بد میشه الان قبض روح میشم دکتر میگه نترسید چیت نیست برو خونه تخت بخواب فردا میام عتبه من بعد رو میکنه به بقیه که از بیخواب شدنشون گلایه دارن و میگه هر کی میخواد راحت بخوابه بگه از این قرصا بدم بهش عوارضی هم نداره تأثیرش فقط یک خواب طولانی و عمیقه اهالی همه از دکتر قرص میگیرن دکتر چندتا هم برای خودش برمیداره و بعد یکی از اهالی رو میکنه به مرد روی بالکن و میگه تو نمیخوای؟ میخوای مرد روی بالکن میگه من که هرچی گفتم باور نکردید حرف زدنم انگار با شما فایده نداره اما این آخرین هربرو دور کنید از خودتون خودتون رو به دست خواب نسپرید اون قرص رو بریزید دور. میکانیک میگه که بهتر دیگه خفه خون بگیری نگاه کن ببین تا چشات کورشه. بعد همشون یک مرتبه قرص رو میذارن تو دهنشون رو به نوبت آب میخورن. بعد متوجه پیرمرد میشن که خوابش برده. دکتر میگه دیدید خوابش برده عرض کردم که این قرصا خوبه دیر به جنبیم همه تو کوچه خوابمون برده شب همگی به خیر. بابای مدرسه و مکانیک زیر بازوی پیرمرد رو میگیرن و میبرنش توی خونش همه از هم خداحافظی میکنن و با خمیازه از صحنه خارج میشن صدای بسته شدن درها و سرفه و خمیازه تموم میشه. چراغا یکی یکی خاموش میشن محله تو سکوت عمیقی فرو میره اما مرد روی بالکن در گوشه از بالکن نگران به خونه متروک چشم دوخته و چراغ رو روشن میکنه خونش در روشنایی کامله صدای خورپوف آروم آروم توی تمام محله میپیچه سکوت خورپوف سکوت خورپوف لحظات سنگینیه در خونه این متروک آروم آروم باز میشه یک حرامی قط بلند و دنبالش حرامی دیگه بیرون میان هر کدوم چاقوی بدون غلاف و دست کلیدی همراهشونه در خونه ها رو با کلیدهاشون باز می کنن و آروم آروم از خونه ها بالا می اما از وارد شدن به خونهی که روشنه یعنی خونه مرد روی بالکن پرهیز می صحنه پر میشه از حرامیا. اونا به داخل کوچه ها حجوم آوردن اونا تموم شدنی نیستن و به تموم خونه ها تموم محله ها و به تموم شهر جبیه خون زدن. نمایشنامه با کلاه، های بی کلاه از سر قلام حسین سایدی اینجا به پایان خودش میرسه. امیدوارم که نمایشنامه رو دوست داشته باشید و برای دوستان خودتون هم بفرستید. اما بعد از انقلاب و هفت، سایدی مجبور شد ایران رو ترک کنه و به پاریس بره. مهاجرت رو خیلی سخت تاب می آورد. خیلی وضع مالی بخور و نمیری داشت. دوستانش بودن اما واقعا نمیتونستن اونطور که باید کار کنن و به سختی همچنان سعی میکردن مجله الفبار رو در و سایدی هم این سختیها رو با خوردن مشروبات الکلی برای خودش سهل تر میکرد و از اطرافیان شنیدم که همین آوارگی مهاجرت و افراد در مصرف مشروب باعث شد خیلی زود غلام حسین سایدی رو در چهل و نه سالگی به خاطر خونریزی مهده از دست بدن سایدی بسیار زندگی دراماتیکی داشته و اصلا توی این تعداد کلماتی که من دربارهش صحبت کردم نمیکنجه. پیشنهاد می خودتون دنبالش برید و اگر دوست دارید ما باز هم از سااددی نمایشنامه کار کنیم حتما توی کامنت ها بنویسید، نظر شما برای ما خیلی مهمه. اما شاملو درباره سایدی توی یک مصاحبه گفته، آنچه از او زندان شاه را ترک گفت جنازه نیمهجانی بیشتر نبود. آن مرد با آن خلاقیت جوشانش، پس از شکنجه‌های جسمی و بیشتر روحی در زندان اوین، دیگر مطلقاً زندگی نکرد. آهسته آهسته در خود تپید و تپید تا مرد. ما در لندن با هم زندگی می‌کردیم. من و همسرم شهود عینی این مرگ دردناک بودیم. البته اسم این کار را نمی‌توانیم بگذاریم دخالت ساواک در موضوع خلاقیت سایدی. سایدی برای ادامه کارش نیاز به روحیات خود داشت، ولی آنها این روحیات را از او گرفتند. فرض کنید درختی دارد میبالد و شما میایید و آن را می میکنید. شما با این کار در نیروی بالندگی او دست نبرده اید بلکه خیلی ساده او را کشته اید. اگر این قتل عمد انجام نمیشد هیچ چیز نمیتوانست جلوی بالیدن او را بگیرد. وقتی نابود شد البته دیگر نمیبالد و شاه سادی را خیلی ساده نابود کرد. من شاهد کشش های او بودم. مسائل را درک میکرد و میکوشید اکسل عمل نشان بدهد اما دیگر نمیتوانست او را اره کرده بودند این چیزی بود که شاملو درباره سایدی گفته در اتفاقاتی که بعد از انقلاب هم برای سایدی افتاد صحبت کردم اما نمایشتامه ای آیه با کلاه آیه بی کلا در سال 46 برای اولین بار با کارگردانی جعفر والی روی صحنه رفت و عزت الله انتظامی پرویز فنیزاده نصیریان نصیریان منوچهر فرید و مهین شهابی این اسمایی بزرگ تو این نمایش بازی میکردن. سایدی سعی میکنه تو این نمایش نشون بده جامعه که توش روشنفکراش منفعل، بی تفاوت و ترسوان چه بلایی سرش میاد. ممنون از اینکه که این قسمت رو هم گوش دادید هم از سعیده جهان دیده ممنونم که این نمایش شما رو برای ما خلاصه کرد. این نقش ماند از غلمت یادگار ا